سال 1945 هفته اول ژانویه 1945 برف سنگینی بارید و شب‌های ششم و 7 آن ماه مونیخ زیر شدیدترین بمباران‌هایی که تا آن زمان به خود دیده بود قرار گرفت. پس از حمله هوایی من و مادرم جلوی خانه من که خراب شده بود به تماشای منظری استثنایی ایستادیم. تماشای شعله هایی که هریسانه به آسمان شب زبانه می کشید. به تماشای دریای سرخ فام و سوزان شهرمان. سرانجام وقتی دیگر چیزی نماند که بتوانیم از کام آتش به نگهبانی برای مراقبت از وسایل در کلیسا گذاشتیم و خودمان به نوت هیل مرکز کمک رسانی حزب که در رستورانی واقع در بنای یاد بود مکسیمیلیان دوم قرار داشت رفتیم. در آنجا غذای گرم و یک فنجان قهوه به ما دادند و قرار شد چنان چه اتاقی پیدا شود برای ما در نظر بگیرند. ما در خوششانسی خوش شانسی بود. هنوز شب نشده سه اتاق از آپارتمانی که صاحبانش از ترس حمله هوایی به روز رفته بودند در اختیار ما قرار گرفت. باقی اساس احساسمان را به این آپارتمان منتقل کردیم و روز بعد خودمان هم به روز رفتیم. تا دوم آوریل در شهرکی به نام هاگ، که در 50 کیلومتری جنوب شرقی مونیخ قرار داشت به سر بردیم. با وجود که مواد غذایی در روستا فراوان بود هر وقت کشاورزی یا دهقانی را میدیدیم از سختی معیشت و کمبود مواد غذایی شکایت می کرد. بار دیگر مزه‌ی املت واقعی را چشیدیم و یک شکم سیر استیک خوردیم آنقدر نعمت فراوان بود که میتوانستیم برای دوستانمان در مونیخ هم چیزهایی بفرستیم من بیشتر اوقاتم را به اسکی روی تپه های خارج شهر یا در میان جنگل های انبو می گذارندم. زخم پایم روز به روز بهتر میشد به طوری که پس از یک ماه کاملا بهبودی یافتم. بدبختانه باز هم مجبور شدم به سازمان جوانان هیتلری بپیوندم و به خاطر تجربیات گذاشتم بلا فاصله به سمت فرماندهی دست انتخاب شدم. شوقم جنبه رزمی نداشت و حالتی داشتم که از هر کاری که کوچکترین نشانی از آموزش نظامی داشت به شدت پرهیز می‌کردم وقتی مجبور می شدم تعطیلات آخر هفته را برای انجام کارهای متفرقه همراه با مادرم به مونیخ بروم در یکی از همین رفت آمدها گرفتار حمله هوایی شدیم که به هر حال جان سالم به در بردیم اما کمی بالاتر از محل سکونت ما خانه‌ی مورد اساقت قرار گرفت و مردی در آن کشته شد خانواده‌اش جسد او را در فرش بزرگی پیچیدند اما با رسیدن موج بعدی هواپیماها فرش را در راهروی خانه رها کرد و به پناهگاه گریختند. وقتی حمله هوایی تمام شد از پناهگاه بیرون آمدند اما هر چه گشتند اثری از جسد مرد نیافتند. فرش را با جسد یکجا برده بودند. اگر حضور هواپیماهای بمب افکن آمریکایی که تمام آسمان جنوب را زیر سلطه خود درآورده بودند نبود در روستا تقریبا می توان گفت که جنگ را فراموش می‌کرد. اما آنها به طور ناگهانی در آسمان نمایان می شدند و به هر ای که سر راه خود می دیدند اهم از کشاورزانی که در مزار کار می کردند، کودکانی که روی سبزه ها واسی می کردند یا یک گاری اسبی که در راه بود شلیک می کردند. گاهی هم موفق می شدند که سر بزنگاه یعنی هنگام جابجایی نیروهای ارتش سر برسند. ولی البته به ندرت چنین اتفاقی می افتد. زیرا بیشتر جا ها در هنگام شب انجام می گرفت. حواست جانویت هر روز روسی آغاز شد و سیستم همرا نقل آلمان مرکزی به کندی گرایید. ترس از روزها مردم را از خانه و کاشانشان فراری داده بود. ترسان ها بیمارد نبود. هنوز دو هفته از تهاجم روسها ها نگذشته بود که موج فراریان در جاده‌های های نمایان شد. زن و کودک، نوزاد و سالمند کوچک، افتان و خیزان در طول جاده‌ها پیاده یا سوار بر هایی که با گاو کشیده می‌شد، راه می‌پیمودند. غالبا یک اسیر جنگی فرانسوی را هم با خود به همراه می‌بردند. بسیاری از خانواده‌های شرق آلمان باید فرار خود را از خشم روزها مدیون سرای فرانسوی بدانند. اما جنگ فراگیر حتی از این مردم بینوا هم چشم نپوشید. در موقعیت‌های گوناگون دشمنی که ترحم هم نمی شناخت از آسمان آنها را به رگبار گلوله می بست. وضعیتی پیش آمده بود که ما آلمانی ها باید تنها خودمان را سزاوار سرزنش می دنستیم. همراه با سیل مهاجران ناگهان خبر شرارت های ها هم اضافه شد. برای اولین بار تکیه کلام روزها را می شنیدم. میت یعنی خانم با من بیا. مردم نخشه هایی را که پس از نامیدی از پیروزی آلمان در کشوهای میزها پنهان کرده بودند دوباره بیرون آوردند و به بررسی وضعیت پرداختند. پیش رفی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را زیر نظر داشتند و آن را با پیش روسها روس‌ها مقایسه می‌کردند. در آغاز همه ترسیده بودند. روزها از طریق سیلزی جاده را به سوی آدر هموار کرده بودند. در حالی که متفقین غربی هنوز پشت راین در جا زدند و تنها نقطه اتکایشان آخن بود. اما در ماه فوریه پس از تصرف پل راین در ریماگن صحنه عوض شد. روزها گهگاه متوقف می شدند و آمریکایی ها و انگلیسی ها در حالی که به اعماق قلب آلمان نفوذ می کردند پیش می رفتند. مردم باواریا نفس راحتی کشیدند. آنها آرزو می کردند ای کاش به جای روسا آمریکایی ها می بهار 1945، بهار زیبایی بود. درختان شکوفه کرده بودند و مردم میدانستند که این بهار پایان جنگ را نوید میدهد. اما سال چطور؟ اوایل آوریل به مونیخ برگشتیم و آپارتمان خود را سر و سامان دادیم. در یک شب گرم ناگهان صدای آشنایی از دوردست قرش توپخانه به گوشم رسید. پس ها چندان هم دور نبودند. با سقوط وین مردم دوباره آرامش خود را از دست داده بودند. صدا از آنه کیست؟ امریکای ها؟ یا روز ها؟ نازی هم وحشت کرده بود. ناگهان جیره های گوشت و چای و شیرینی را توضیح کردند. ظرف یک هفته دوباره هر بار دو کیلو گوشت دادند. چون این بزل و بخششی در تمام طول جنگ دیده نشده بود. از سوی دیگر مقررات بود که پشت مقررات وضع شد. کار به جایی رسیده بود که شمار جرائمی که مجازات مرگ به همراه داشت از تعداد افرادی که میتوانستند مرتکب آن شوند بیشتر شده بود با مرگ روزولت بارقی از امید در دل آلمانی ها تابید اما چنان ضعیف که پس از چندی به کلی محو شد اواسط ماه آوریل من و مادرم برای دیدار خالم به محلی به نام گاتینگ واقع در 20 کیلومتری جنوب غربی مونیخ رفتیم از آنجا که دسترسی به قطارهای عادی ممکن نبود، مجبور شدیم با پوکلبان به خارج از شهر مونیخ برویم و از آنجا دست بلند کنیم ما از ماشین های وسط راه بخواهیم که ما را به مقصد برسانند. بعد نیست درباره کلمه پوکلبان توضیحی بدهم. در فوریه 1945 شبکه تراموا توری به هم ریخته بود که حتی عبور یک تراموا هم غیر ممکن بود. بنابراین، برای و آمد باید از وسایل نقلیه دیگری استفاده میشد. یکی از این وسایل خطاهنی بود با ارزش کمتر از اندازه معمول نظیر خطوطی که در کارخانه های بزرگ برای حمل و نقل داخلی استفاده میش. برای برداری از این خطوط از لوکوموتیوهای های موجود استفاده می شدد. واگان درست حسابی وجود نداشت آنچه به جای واگانن کار گذاشته بودند عبارت بود از یک شاسی با چهار چرخ و یک کفی. که نیمکت ها روی آن نصب شده بود همین و بس موقع سوار شدن در این قطارها که با سرعت زیادی حرکت می کرد، خودمان را محکم به صندلی میچسپاندیم که پرت نشویم اما این فقط قسمتی از مشکلات بود در این قطارها از چیزی به اسم ترمز هیدرولیک خبری نبود تنها ترمزی که وجود داشت یک ترمز مکانیکی در قسمت موتورخانه بود که وقتی قطار ترمز کرد، ناگهان تمام ها محکم به هم کوبیده میشد که در بسیاری موارد حوادث دردناکی به بار می آورد. متاسفانه در آن زمان کلاه ایمنی هم به اندازه کافی در دسترس نبود. به هر حال بر گردیم به سفری که برای دیدار خالم به گاتینگ در پیش داشتیم. وقتی به مونیخ پسینگ رسیدیم، همه چیز به همان شکلی بود که قبلا دیده بودم. گشتیهای دشمن و خودروهای نظامی به سرعت در خیابانهای خاک‌آلود در حرکت بودند و مردم هم در صف‌های نوبت گرفته و منتظر بودند. تا از مقابل مأموران کنترل باکسرند سربازان اس, اس افراد حزب و اعضای سازمان جوانان هیتلری کنار خیابان ایستاده بودند و به هر کسی که یونیفرم تند داشت با سوء زن نگاه می کردند یکی از ها به ما گفت که اجازه نداریم از این حد جلوتر برویم. زیرا ورود به این منطقه ممنوع است. پس از اینکه آسمان و ریسمان را درباره بیماری خالم به هم بافتیم، اجازه عبور داد. ولی اسم مشخصات ما را به دقت در دفتر کوچکی ثبت کرد. باید قبل از ساعت بیست دو از همین راه برگردید. یک کامیان ارتشی ما را تا گاتین برد. در طول سفری که از میان جنگل می‌گذشت، فهمیدیم که به راستی پشت خط مقدم جبهه هستیم. خودروهای مخابرات، نفربرها و گهگاه حتی تانکهایی در قسمتهای تستیح شده جنگل استتار شده بودند. و خدمه آنها زیر گرمای مطبوع آفتاب بهاری لم داده بودند. قررش مداف ما تشطوبخانه در شمال موزیک متن این صحنه را تشکیل میداد. دهکده های سر راه من گرچه سر پا بودند ولی خالی از سکنه به نظر میرسیدند. هر ازگاهی سگ یا گربه ای را میدیدیم که گوش و کناری لم داده بود. حتی آنها هم وحشت زده به نظر میرسیدند. به تدریج احساس ناخوشایندی وجودم را فرا گرفت. احساس کردم به زودی اتفاق ناگواری خواهد افتاد. آرزو می کردم که همه چیز به خیر بگذرد. کامیون درست در آستانه شهر توقف کرد. راننده به ما گفت که اگر سر ساعت هشت بعد از ظهر در همین نقطه باشیم می تواند ما را به مونیخ پسینگ برگرداند. سر ساعت هشت در محل حاضر شدیم و چند دقیقه بعد سر یک کامیون از پیچ جاده پیدا شد و جلوب های ما ایستاد. من و مادرم سوار شدیم و دوباره از همان راهی که آمده بودیم برگشتیم. قروب به تدریج جای خود را به سیاهی شب می‌داد که دستان همه جا را فرا می گرفت. در حالی که تکان تکان می‌خوردیم، آهسته به پیش می‌رفتیم. ناگهان راننده کامیان سوت بلندی کشید و سرعتش را کم کرد. از پنجره به بیرون نگاه کردیم. در سمت راستمان صفح طویلی از آدمها با لباس های راه راه تیره و روشن دیده میشد که تحت مراقبت های شدید نگهبان های نازی در حرکت بودند. بیشتر آنها به زحمت جسم بیجان خود را جلو میکشیدند و عدهای هم رفقای خود را روی دوش حمل میکردند. اگر کسی بر اثر خستگی لحظه از رفتن باز می مند با ضربات قنداق تفنگ نگهبان ها به جلو رانده میشد مادرم بسته کوچکی از کیف خود بیرون آورد و آن را به یکی از آنها داد مرد سرش را به سوی ما بلنگ کرد صورتش نشانی از زندگی نداشت اسکلت متحرکی بود که به زحمت میکوشید بگوید متشکرم فریادی از عقب به گوش رسید یکی از نگهبانها با عجله خود را به کنار کامیون رساند با پوتین های میخدارش از پشت چنان لگدی به کمر مرد زد که جلوی چرخهای کامیون فلا شد داد زد به اون جهود کثیف چی دادید مادرم گفت راستش فقط یک ساندویچ مگر به شما نگفتند که نباید با هیچیک از دشمنان رایش تماس بگیرید یا به آنها غذا بدهید از تعداد این حرامزاده ها کمتر شود بهتر است اسکلت متحرک بی جلوی چرخ طرف راست کامیون افتاده بود نگهبان اس اس نگاهی به او انداخت و در حالی که نیشخندی به لب داشت نگاهش را به سوی راننده چرخاند میدونی چیکار کنی؟ گاز بده از روی این خوک کثیف رد شو. لگش میکنیم و خیلی ساده گزارش میدیم که تصادف کرده. طوری نمیشه. یه شکم برای سیر کردن کمتر. <تصفيق> ستون و سرا آرام و ناامید از سرنوشت شوم خود همچنان به جلو کشیده میشد راننده در کامیون را باز کرد و پیاده شد. نگهبان را کنار زد. جلوی ماشین خم شد و مرد زندانی را از زمین بلند کرد. بلنش رفیق، نمیشه که اینجور دراز به دراز روی جاته بیفتی باید به راه خودت ادامه بدی خدا رو چه دیدی، شاید به زودی همه چیز درست شه دو نفر از رفقای زندانی به کمک او آمدند و هر با هم به سفر نامعلوم خود در تاریکی ادامه دادند در این موقع راننده به طرف نگهبان که دهانش از تعجب باز مانده بود رفت و فریاد زد درست بیست. نگهبان اس اس بی اراده به حالت خبرداری استاد. خاص چیزی بگوید اما زبانش بند آمده بود. چاکه دهنتو ببند. از اسکیت حالا رس شده قبل از اینکه از سربازان کنند با, کنن با گروهبان حرف بزنند. در این هنگام چند نگهبان دیگر هم از راه رسیدند و نیم دایره به دور آن دو تشکیل دادند. راننده فریاد زد: همگی گی خط. همه با شرم و وقاری ساختگی از فرمان اطاعت کردند. ارشد دست کجاست؟ ها؟ یکی از آنها گفت آنها در گاتینگ توقف کردند ولی به زودی به ما خواهند پیوست پس شماها یک مش جانور بی سر ها؟ زندانی ها ایستاده بودند و به این صحنه مینگریستند. یکی از اس, اس ها فریاد زد راه بیافتید خوک های کسیف راننده به سوی او رفت بیا بیرون سرباز اس اس از صف خارج شد چند وقت در ارتش خدمت می کنی شش ما سرکار جب هم رفتی؟ خیر سرکار قبل از اینکه به اس اس به چه می عضو سازمان جوانان هیتلری بودم که اینطور؟ پس عضو سازمان جوانان هیتلری بودی بعد هم به اس اس پیوستی جب هم که نرفتی واقعا که دست خوش و حالا به این بیچاره ها میگی خوک کسیف؟ سرواز اس اس گفت جهودها ها دشمن ما هستند و هرچی بگی حقشونه ببین احمق اگه من این حرفها رو می زدم حق داشتم اما تو چی که نجه پرفتهی نه هیچی و اون وقت طوری اربده میکشی و داد و فریاد راه می دزی. انگار همه دنیا رو خریدی تعداد و چند نفر است. دویست و پانزده نفر اونها رو کجا میبرید؟ اول به پلانگ بسیار خوب فرمانده در پلانگ منتظر شماست خدا به دادت برسه اگه یک زندانی کم و كسب بشه یک راست راهی جبهه خواهی شد در اونجا چند نگهبان از ارتش حمل و نقل را بر احده خواهند گرفت اگر دقیقا دویست و پانزده زندانی را به پلانک نرسانی سرت را به باد خواهی داد هایل هیتلر! راننده پرید توی کامیان و ما همانطور که به ستون بیانتهای های متحرک نگاه می کردیم، به سفر خود ادامه دادیم هوای حسابی خنک شده بود. راننده از من خواست کتش را رو روی شانه هایش بیاندازم. کت او را از زیر صندلی درآوردم و همانطور که خواسته بود روی دوشش انداختم و ناگهان متوجه شدم که او هم سرباز است. پس او گروهبان نبود. وقتی جریان را به او گفتم نیشخندی زد و گفت؟ ولی اونها که نمیدونستن میدونستن؟ قبل از ساعت بیست و دو از جایگاه کنترل گذشتیم و ساعتی بعد به خانه رسیدیم. از حملات هوایی خبری نبود. اما روز به روز صدای انفجار توپخانه نزدیک و نزدیکتر می شد. در موقعیت جدید ناچار بودم در جلسات هفتگی سازمان جوانان هیتلری شرکت کنم. در آنجا درباره سیاست جهانی آلمان و موضوعاتی از این دست گفتگو می کردیم. دوباره طرز استفاده از را به ما آموزش دادند. در بیستم آوریل، سال روز تولد ایتلر، همه بیانیه ای او را خواندیم. برلین از آن آلمان است. ستراسبورگ و وین هم به زودی از آلمان خواهد شد. به زودی ورق برمی کردند. مردم دیگر از آن یاوه ها خسته شده بودند. تنها چیزی که آنها را مجبور به سکوت می ترس بود. همه روز پسترهایی های در خیابان ها می چسبندند که از تیرباران این یا آن فرد خائن خبر میداد. داد. هفته آخر ماه آوریل رسید. هوا بسیار گرم و آفتابی بود. بعد از ظهر جمعه ناگهان طوفان مهیبی در گرفت و بارانی بی امان از آسمان فروریخت. شب جمعه 27 آوریل 1945 جرعت به خرج دادم و در هوای طوفانی برای گرفتن جیره اعلام شده به مغازه خاربار فروشی رفتم. همه چیز مثل گذشته بود. امیدی به صلح نبود. سردی و یک نواختی زندگی را به عنوان سرنوشت محتوم خود پذیرفته بودم. مردمی که برای خرید آمده بودند، از اقب نشینی، مبارزات تبلیغاتی یا خطوط جبهه سخن نمی گفتند. بیشتر حرفها به آخرین خبرهای منتشر شده در بولتن مانند گزارش ناپدید شدن سربازی در شرق یا گم شدن اشیای قیمتی در حمله هوایی محدود بود. در آفرید 1945 اخبار جدید دیگر شوری در من بر نمیانگیخت مگر آنکه به نحوی با منافع شخصی من ارتباط پیدا می کرد. اخبار مربوط به راهش دیگر برایم هیجان انگیز نبود. تنها واکنش من این بود که از خود بپرسم این حوادث چه تأثیری در زندگی من دارد؟ یک روز موقع عبور از خیابان گورتسمول دوستم گانتر را دیدم که شتابان در طول خیابان میدوید و گهگاه میایستاد و به رهگذران چیزی میگفت وقتی نزدیک من رسید با هیجان فریاد زد پیشوا مرد دقایقی پیش در گزارش ویژه این خبر را اعلام کرده بودند پس پیشوا مرده بود از شنیدن این خبر نه هیجان حیجان شدم و نه تأصفی به من دست داد در حالی که به راه خود ادامه میدادم در این فکر بودم که مرگ پیشوا چه تأثیری در زندگی من خواهد داشت. چند روز بعد پاسخ این سوال را پیدا کردم. وقتی مادرم در را به باز کرد گفتم مادر پیشوا مرد و او آهسته اما از ته دل گفت خدا را شکر. سپس با نگرانی دوروبرش را نگاه کرد که مبادا کسی حرفش را شنیده باشد. خوشبختانه کسی آن بر نبود. در سکوت کامل مشغول خوردن غذا شدیم ولی در همان حال از پنجره های باز ساختمان صدای قرش بی امان نزدیکتر از همیشه به گوش می رسید آن شب هم طبق معمول با لباس کامل به رخت خواب رفتم مدتی بیدار ماندم و در این فکر بودم که سرانجام چه خواهد شد و اگر سر شود چه تاثیر در زندگی من خواهد داشت زندگی بدون دلهاره برای من قابل تصور نبود. روزها بدون رژه رفتن و شبها بدون آشیر حمله هوایی و زبانهای آتش مفهومی نداشت. زندگی من تا آنجا که به یاد میآورم چنین بود. برای من صلح قابل تصور نبود. خواب به چشمم نمی‌آمد و هزاران سوال ذهنم را به خود مشغول می کرد. آیا این شب حمله ای صورت خواهد گرفت؟ چندبار دیگر مجبورم مثل آدم ماشینی راه پناهگاه را در پیش بگیرم.